بسم الله الرحمن الرحیم المعانی التی توستفادو من الاسطفامی بالقرائنی معانی که گرفته میشن به دست میاند از استفام با قرینه ببینید در امر گفته بود آقا هر امری به معنای امر نیست هر نهی به معنای نه هر استفامی هم به معنای استفام نیست معانی دیگه ای داره که با توجه به قرینه به دست میاد بله این عنوان درس بود القاعده قاعدة 48 کتاب که البته اینجا به اشتباه نوشته 38 و قد تخرجو الفام و الاستفامی ان معانیها الاصلیتی لمعان اخرى استفادو من سیاق کلام. گاهی خارج می شود الفاظ استفام از معانی اصلیشان الفاظ استفام از معانی اصلیشان خارج می شود به معناهای دیگر که به دست می آیند از سیاق کلام قول معناه تي حسن كان نافي نافي انكار والتقرير توبيخ تعظيم تحقير استبطاع، تعجب تسويه والتمني والتشويق يعني هر كل موضوع تو امثله توز شلون ميات هلا بيي روی قال البحتري البحتري ميجي هل الدهر إلا غمرت وان و شیکن و وانفراجها و در این مثال بحتوری میگه نیست روزگار جز سختی که برطرف شدن اون سختی نزدیک است و نیست روزگار جز تنگی که فرج آن نزدیک است خب اینجا حل به به معنای نیست به معنای نفیه. نمیشه. جان؟ نه، این انکاری نیست. این حل به معنای نفیه. موقعی میگه هل الدهر الا یعنی نیست روزگار جز شدت. و دور شدن اون شدت, شدت کن نزدیک معنی روانش اینه که روزگار سختی هست که دور شدن اون سختی چیه نزدیکه پس اینجا حل به معنی چیه از الله. از الله از چیه بعد از حل چی اومده بله بله ضعیقتون آه و نیست روزگار جز سختی که انفراجش نزیکه نیست روزگار جز شدتی که برطرف شدن آن نزیکه و نیست روزگار جز تمگیه که فرج آنچه نزیکه سریعه پس اینجا استفام با تاجب قرینه به معنی چه است؟ اما بيت دوم و قال ابو الطيب في المديح، اتلتمس الاعداء بعد الذي رأت قيام دليل و وضوح بیانی آیا میجویند دشمنان بعد از این که بعد از این اون پیروزی های همه چیز آشکار تو پیروزی تو رو دیدند، غلبه تو رو دیدند. آیا میطلبند؟ قیام دلیل یا بیان واضح؟ آه این انکاریه داره انکار میکنه که بعد از اینکه دیدن تو این صفات داری دیگه دنبال دلیل نیستند. که دنبال دلیل بگردند. پس اتالتمیسو الاعداء و بعد لذی رأت قیام دلیل او وضوح بیان میگه آیا طلب میکنن دشمنان تو دلیلی را بر این چیز که الله متعال میخواهد که امر تو را غالب قرار بدهد بعد از اون ادلی که دیداد میگه نه معنان دی این موله هل یستوه الذین يعلمون والذین لا يعلمون آیا آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند برابرند. این استفهام انکاریه یعنی yani نه برابر نیستند اینجا هم اینا دیگه دنبال این نیستند بعد از دیدن دیگه بیشتر دنبال دلیل نیستند پس استفهام اینجا به معنی انکاره نه از انکار فرق میکنه نفع از انکار فرق میکنه وقال المحتوری ونحون ممولاً بعدش إستيميات استسميات، وق وقال المحتوري ألاست أعمهم جودا وأزكاهم عودا وأمضاهم حساما، ها ببينت يجدي قديش تواشيت ألاست أعمهم جودا وأزكاهم عودا وأمضاهم حساما، آية تو بخشندترين عن هنيسي آية تو قوی ترین آنها نیستی آیا تو شمشیر, زنی شمشیر زن ترین آنها نیستی آه این تقریریه یعنی بله آه استفام تقریری اینه که یعنی استفام به معنای چیه تقریره، تقریر یعنی بله انکار بلد یعنی بلد. نه تقریری متعییده دیگه بلد. بلد. داره مدهش میکنه عبود طیب داره چکارش میکنه؟ بحطوری داره مدش میکنه که آقا تو بخشنده هستی تو نیرومندترین هستی تو در نبرد در شمشیرزنی قوی ترین هستی ببینید حسام اینجا اومد. و قال آخر دیگری گفته اعل خللفو بین نکن اعله واظ بج کبره علاما. تاکه اختلاف بین شما تاکه داره توی خوشون میکنه. از بس که اختلاف داره مثل این کی میاد یا چگرده نصیحت میکنه. تاکه نمیخونید خوونید. تاکه نمی نمیخواد که استفام بکنه استفام نیستین. و میخوادشون بپرسه که تاکه نمیخونید بلکه داره توبیخشون خوشون میکنه. تاکه شما نمی نمیخونید تاکه این اختلاف بین شما تاکه و این فریاد بزرگ برای چی؟ یک چی علما تصفو <سطفح> می‌جسته؟ الهام الفو خن خوب سوالت چیه؟ سوال من اینه چی فهمشین؟ الهاما تاکه این ایلامه در اصل علما هست تاکه ما آره دیگه علما تاکه اختلاف هست بین شما تاکه ولين سؤال ليسا دارة توبيخ شون ميكوله كيانا أغا هزين چيتون داس بكشي دي اختلافتون بس انجا يعني توبيخ بود وقال أبو الطيب في الرثاء أبو الطيب دار مارسية ميجي من للمحافل والجحافل والصراء فقدت بفقدك نيرا لا يطلعو ومن اتخذت على الضيوف خليفه ضاع ومثلك لا يكاد يضيع خب انجا ابو الطيب داره تعظيم مكره عظمت شو بيقال مكره كاغا من للمحافظه تشكاسس برايه جامها جلسها والجحافل ارتش ها و سررا و برای شبروی؟ یعنی تو بودی که این چهیا رو داره شو بیان میکنه تو همچنین مردی بودی. فقطت به که لا از دست داده است با از دست دادن تو خورشید نورش را که دیگه طلوع نمیکنه خورشید با رفتن تو دیگه طلوع نمیکنه. اینجا در بیت پنجم عبدالطیب میخواد تعظیم و اجلالش رو بیان بکنه صفات آقایی و شجاعت و کرمش رو میخواد چکار بکنه؟ در زمان زندش بیان بکنه موتویش شدی؟ موسیقی <تصفيق> یو باید یهو میتونونه درست باشه من به برای معولی هست شده می چرا چون ضاعو معلومه این هم دیگه معلومه خب پس در این مثال مثال پنجم هدفش سوال نیست داره صفاتی رو بر می شماره که بزرگ منشی و تعظیمش می کنه که آقا تو اهل شمشیرزنی و لشکر و دیوان و مهمانداری بودی و جلسه ها قال ایه جو کافورن همه در بیت دیگه کافور رو چکار می‌کنه کنه می در زیر آورده قیل اینا کافورن کان عبدن کافور عبدی بوده است کافور چی بوده است؟ عبدی بوده است خب اینجا میگه که من ایتی یاتی مثلو الكرم، این المحاجمو یا کافورو والجلمو میگن کافور برده یک حجامی بوده حجامتگریه حالا داره کافرور رو چکار میگو که؟ کافور الان اومده ادعای بزرگی میکنه آه. میگه ما با ک برای افرادی مثل تو از چه راهی رسیده؟ من ایتی الطرقی یاتی مثل کل کرم آ؟ از چه راهی کرم به نزد توی میاد؟ این محجم یا کاافور و وال جلب و داره تحقیرش میکنه میگه اون دستگاه های هجممتت آقای کافور این المحاجم و یا کافور و الجلم و سائل حجامتت کجایه؟ هونی که هم جلم همون تیغ باش میزنه و محاجم هم همون چیش؟ زرفش پس اینجا ابو الطیب نمیخواد که سوال مطرح کنه بلکه میخواد طرف چکار کنه اه؟ تحقيرش كنه، ما تواجه شو دي مولبي؟ أما بيت بعدي وقال أيضا حتى ما نحن نصاري النجم في الظلم وما سراه على خفن ولا قدمي. تاكه ان حتى ما درأس حتى ما هست. درأس جاس؟ ما بالي. تاكه ما سیر کنیم همراه با ستارگان در تاریخ ها و ما سراهو علا خف و, علی و علی قدم شب روی ستارگان برخف و برقدم نیست خفمون مال شطور رو میگن نه خب اینجا سوال به معنای استبتاه هست مثل اینکه آقا کرونا طول کشیده رفتنش طرف میگه این مریضی تا که وجود داره آه؟ اگر کرونا بره چی میشه اگر کرونا بره چی میشه چی میشه چی میشه اینو میگن استبطا یعنی تأنی یعنی درنگ یعنی امحال مهلت شدی؟ که میشه که این بره جا هم میگه تا که ما همراه باست دارگان در شب بره بیم طولانیش استبتایه یعنی تا که ما این گرفتاری و این راه رفتنا بله اینو میگن استبتا مثل این میمونه که آقا ملتی بدبختند دنبال رشد و فیروزی نیستند سخنران میاد اینا را به شکل سوالی ولی هدفش سوال نیست میگه تا که آقا ما در این گرفتاری ها بمونیم تا که ما به این بدبخته ها فلاکت ها ادامه بدیم به قول این جوان عاشق تا که ما بدون زن تحملش کنیم یا کی میشود که این روزگار بیزنی ما به پایان رسد این بود مولوی؟ خير إن شاء الله كتاب طيان مي وقال إذن وقد أصابته الحمى. بنت الدهر عندي كل بنت. فكيف وصلت أنت من الزحام؟ آه؟ أي بنت دهر؟ بنت الدهر منزورش همين تعبهاش. همین مریضی هست مریضی حما هست میگه ابنت الدهر ای مریضی حما اندی کل بنت نزد من هزاران بابا مشکلات و گرفتاری ها هست فکیف وصلتی انتی من الزحامی؟ تو دیگه چطور با این ازدهام پیش من نسیدی؟ آه؟ تواجه شدی؟ اندگه معنای تعجبو میده معنای چی رو میده؟ الشجوره ما نتعجب. وقال تعالى سواء علينا أو عظت أم لم تكن من الواعدين. برابر كآية. Pendant bigiriya nagiri. إن تسفيهس. إن جا استفهم بمعنيه. تسفيهس. وقال تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفؤ لنا. إن جا بمعنى تمنية سؤال. اینجا لنا نامی شفا ای کاش ما شفیانی داشتیم که فیش فول نا برای ما چکار میکردند، شفات میکردند. و قاله تعالا، هل ادلكم على تجارت تنجيكم من عذاب اريم؟ آیا راهنماییتان کنم بر تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات بدهد این استفام لیسا این داره تشویقشون میکنه داره چکارشون میکنه؟ با این ادبیات تشویقشون میکنه خب میریم درس بعدی درس بعدی کوچکه